داستان ششم شیک پوش. آقای نواپور را نمیشناسید. ایشان از جوانهای متجدد و منور و بازوخ هستند راستی ارز میکنم. بسیار فاضل و دانشمند و دارای فضایل ذاتی و اقتصابی می باشند. از نجابت خانوادگیشان که چه عرض کنم تمام خصایل حمیده و صفات پسندیده در ایشان جمع است اینطور آقای نواپور را به این بنده معرفی کردند و این عبد ضعیف راقم سطور باید تصدیق و اعتراف نمایم که تمام صفات فوق و ذکر را ایشان دارا بودند من اغلب با رفیقم در کاف رزنوار شطرنج بازی میکردم و آقای نواپور نیز که شطرنج را بازی فکرها می دانستند گاهی موقعی که ما بازی میکردیم تشریف میآوردند و آنجا تماشا میکردند. البته من به هیچ وجه نمیخوام با آقای نواپور که از جوانان منور فکر هستند توهین کنم و نعوذ بالله بگویم که ایشان هم مانند بعضی اشخاص نصف بیشتر عمرشان را در کافه ها می گذارانند. خیر ایشان فقط عصرها برای ساعت پنج به کافه تشریف می آوردند یک ساعتی آنجا می نشستند و پس از صرف قهوه و چای و شیرینی به دولت ارک اگر بنده میگفتم و به کل خرابه اگر خودشان اصطلاح می‌فرمودند تشریف می‌بردند دیگر گمان نمی‌کنم لازم باشد شردم که صورت و اندام آقای نوابور که از جوانان متجدد و منبر الفکر هستند به چه شکل بود البته هر کس که مانند خود آقای نواپور با حوش باشد فوری میتواند حدس بزند که البته صد البته ایشان همه هفته سر مبارکشان را اصلاح میفرمودند، ریش شریفشان را هر روز میتراشیدند، با دستمال ابریشمی چشمهایشان را پاک میکردند، چوب سیگار ظریف و نازک لب دهانشان میگذاشتند. اما زبانم دال خدای نکرده کسی تصور نکند که این حرکات ایشان جلف بود و یا اینکه کمی شبیه به حرکات جوانان تحصیل کرده فرنگ رفته می بود نه از تغفر از این صفات ابدا در ایشان هیچ کستا به حال ندیده است حتی دشمنان خونی ایشان دشمن که البته نداشتند اگر خدایی نکرده دشمن می تصدیق میکردند که وجود آقای نوابور از این گونه خسایل رزیله منزه و مبرا بود ولی با وجودی که میل ندارم راجب صورت ظاهر ایشان بسته کلام بدهم چه باطنشان پر از معنی و حقیقت بود و شرحان را وظیفه حتمی و مسلم خود می‌دانم اما دیگر نمی‌توانم خودداری کنم از اینکه راجب پالتوی ایشان چند کلمه صحبت کرده و دل عاشقان پالتوی شیک را با نوک قلم خود نویسم چنان ریش ریش کنم که هیچ مرهمی برای مداوای جراحتهای آن یافت نشود اما چه فایده که قلم من از شرح این مطلب به این مهمی آجز و زبانم الکن است ای کاش شاعر بودم و می توانستم شعر بگویم ردایی چو زلفان یارم سیه اما حیف که طب هم خوشگیده و هر سعی می کنم نمی سیه را با فتا غافیه ببندم از کجا شروع کنم؟ ای خاننده ی عزیز به چه نحوی پالتوی آقای نواپور را شهر دهم؟ از کجای مطلب سخن آواز کنم؟ من مجبورم از روزی که متوجه پالتوی آقای نواپور شدم مطلب را برای خواننده گرامی که وقت شریف خود را صرف قراعت ترهات و لا لاتا این عبد ضعیف راقم سطور کرد شهر دهم. این بنده روزی از روزها در کافی رزنوار نشسته؟ و منتظر کسی بودم که بیاید با من شطرنج بازی کند اتفاقا آقای نواپور که از جوانان متجدد و منبر فکر هستند تشریف آوردند اواگل پاییز بود و اگر اشتباه نکنم پالتوی بارانیشان به صلاح خودشان دمی سزون دستشان بود از ایشان استدعا کردم که با من شترنج بازی فرمایند ولی معظم الله دعوت این عبد ضعیف راقم سطور را اجابت نفرموده چون این اشاره فرمودند که تا ساعت پنجونیم باید از اینجا حرکت کنند و منتظرند که یکی از رفقای محترمشان بیایند تا به اتفاق ایشان به خیاطخانه بروند. بعد نمونه پارچه را از جیب مبارکشان بیرون آورده به من دادند و استفسار فرمودند که این پارچه چطور است. این جانب چون اطلاعات کافی و وافی در تشخیص پارچه های خوب از بد نداشتم، جواب قطعی ندادم و ایشان برای آگاهی این بنده شرح مبسوطی راجب انواع و اقسام پارچه و مخصوصاً پارچه های انگلیسی و هایلایت و انگلیش تیلورز و مراتع استرالیا و های لندن و پاریس و مدهای جدید اروپا و مجلات اروپایی که در آن از علم لباس‌های جدید گفتگو می‌شود و تأثیر لباس اشخاص و غیره و غیره بیان فرمودند. و یقین دارم که اگر رفیقشان سر وقت تشریف نمی آوردند باز هم می و صحبت می فرمودند و مخصوصا از ساعت هشت که موقع تشریف فرمایشان به منزل بود باز هم شاید دیرتر تشریف می بردند نمی دانم حقیقتا چه علاقه داشتند که به معلومات این جانب راجب این موضوع بیافزایند. وقتی که رفیقشان تشریف فرما شدند اول پارچه را به نظر ایشان رساندند و بعد مکالمه سیل ما بین آقایان به عمل آمد. آقای نواپوررگ از جوانان منبرول فکر و متجدد هستند چون این فرمودند. از این پارچه که خوشتان میآید رفیقشان بله بله بسیار خوب پارچه است. واقعا من همیشه از سلیقه حضرت عالی در تعجب هستم. نظرتان هست، بنده قریب سه ماه عقب پارچه پالتو میگشتم و بالاخره هم که حضرت عالی متده هستید موفق نشدم و عقبتان پارچه کسیف را ابتیاع کردم آقای نواپور نه پارچه‌ای که حضرت عالی انتخاب کرده اید بسیار خوب است ولی شاید آن وقت از این پارچه نیاورده بودند میدانید؟ آقا این تجار که سلیقه ندارند، گاهی اتفاقی بعضی چیزهای خوب از زیر دستشان رد می شود همینطور مثلا خیاط خوب نیست رفیقش راستی آقای نواپور لباستان را به کی داده اید؟ نواپور بنده از حضرت عالی برای همین موضوع تقاضا کرده بودم که تشریف بیاورید تا به اتفاق برویم پهلوی خیاطی که من لباسم را داده‌ام تا در موقع پروب کردن حضرت علی هم تشریف داشته باشید من لباسم را دادم به بارلی و به عقیده خودم از او بهتر کسی در ایران نیست رفیقش آقای عزیزم، من کاملا معتقدم که حضرت عالی جوان متجدد و منور الفکری هستید. معهازا بسیار متاسف هستم. این بارلی لباس شما را خراب خواهد کرد. آقای نواپور گمان نمی کنم. رفیقش عرض می کنم خدمتتان. همین بارلی دو مرتبه لباس مرا خراب کرده و بالاخره من آن را دور انداختم. آقای نواپور نه خیر دیگر چاره ای نیست. رفیقش چطور چاره ای نیست؟ هنوز زیر نشده است تشریف ببرید و از او پس بگیرید. آقای نواپور. نه دیگر نمی شود. امروز موقع پرو است. معاا من فرمایشات حضرت عالی را کاملا قبول ندارم. برلی خوب حیاتی است. رفیقش آقای نواپور استد عا می کنم. اگر خودتان میل ندارید لباستان را از این مرد پس بگیرید بنده از طرف حضرت عالی میروم و اون را پس می گیرم آقای نواپور نه آقا از التاف مبارک مشعوفم ولی دیگر کاری نمی شود کرد بعد هر دو آقایان خداحافظی کردند و تشریف بردند از آن روز من متوجه پالتو آقای نواپور شدم با آن زوغ سرشار که مخصوص معظم الله هست، ولی هیست که پالتو ایشان هم در تمام ایران و بلکه در اقصاب بلاد انگلستان و امریکا نیز منحصر به فرد بود. برای انتخاب فرم پالتو، پس از استفاده از بیست مجله مد فرنگستان و آمریکا، بیش از دو روز با رفقا و صاحبان زوق و احرفن جلسات متعدده تشکیل داده بودند. برای انتخاب خود پارچه از کتب مختلف استفاده کرده با چند کارخانه انگلیسی در منچستر مراسلاتی رد و بدل کرده و بالاخره پارچه های انگلیسی را که پشمان ها در استرالیا نه در ایرلند به عمل می‌آمد، ارجه بر پارچه های دیگر دانسته بودند. وقتی که این پالتو تمام شد، کلیه دوستان آقای نواپور را به خانه‌های خود دعوت می‌کردند که از دیدار پالتویشان لذت ببرند تا یک ماه و بلکه بیشتر هر وقت من آقای نواپور را می‌دیدم صحبت ایشان با رفقایشان و با من راجع یکی از تکمه های پالتویشان بود که بدبختانه خیاط کج دوخته بود و ایشان هرچه خواسته بودند به او حالی کنند که این تکمه جایش کج است موفقیت حاصل نکرده بودند از این جهت خیلی اوقاتشان تلخ بود. اصولا عقاید آقای نواپور راجب لباس از هر جهت جالب توجه است. ایشان یک روز شرح مفصلی راجب ریشه لغت پالتو برای این جانب صحبت فرمودند. کلمه پالتو از پالتوت فرانسه اقتباس شده و این همان لغت پالتروک هلندی است. و اون در قدیم لباسی بوده که روی لباسهای دیگر تنشان می کردند و این لباس ممکن است شبیه توگای رومی و یا تونیک کشیش ها بوده باشد و با ردا و عبای مسلمین و خرقه دراویش و متصوفین و لباده اهل دین و جبه اعیان و غربین سلاطین و چادر مخدرات و خوانین در یک حکم است. مقصودم این است که آقای نواپور از آن جوانان سطحی نبودند که بیشتر وقت خود را صرف لباس کنند ایشان زیاد به کتب قطور مراجعه می و در هر مورد اسم کتاب انسیکلوپیدی یا بریتانیکا را با آب و تاب مخصوصی به زبان می‌آوردند. آقای نواپور که از جوانان منور الفکر و متجدد بودند همیشه سعی و جدیت داشتند که اعمال خود را حتی در جزئیات نیز کاملا با اصول فکر و منطق و مدرنیسم وفق دهند من فراموش کردم عرض کنم که آقای نواپور دارای معلومات عالیه بودند و از این حیث قطعاً جزء طبقه ممتاز ایران به شمار میرفتند. ایشان تا کلاس سوم متوسطه را در مدرسه آمریکایی دی کرده ولی از آنجا که فوق العاده باهوش و زرنگ بودند و گویا دو مرتبه در امتحان آخر سال موفقیت حاصل نکردند از همان وقت متوجه شدند که در مدرسه چیزی نمی شود یاد گرفت. این بود که از آنجا با توافق نظر ابوی محترمشان بیرون آمده و در خانه مستقلاً مشغول کسب فضایل و علوم شدند. ایشان معتقد بودند که هیچ یک از اشخاص بزرگ از مدرسه بیرون نیامده‌اند. هیچ یک از آنها دکتر و پروفسور و لیسانسیه نبودند. ایشان با ذوق و شوق مخصوصی آثار و تصانیف فوزلا و ادبای گذشته را مطالعه می‌فرمودند و بس و از معماها و اسراری که بزرگان در کشوانها عاجز بودند به همت ایشان با فکر برجسته و هوش مفرتشان از عالم نیستی به دنیای هستی درآمد. آقای نواپور که از جوانان متجدد هستند از آن زمره خاصی می باشند که سعدی استاد سخنوران ایران را می پرستند و اغراق نکرده ایم اگر بگویم ایشان سعی دارند که خط مشی زندگانی خود را نیز به سبک و رویه دوره ن ساله زندگانی سعدی ترتیب دهند. چه آقای نواپور جوان منبرول فکری بودند و اعتقاد داشتند که باید چون سعدی قسمتی از عمر را، به و قسمتی را به مسافرت و قسمتی را به سخن سرایی گذرند منتها ایشان به هیچ وجه مایل نبودند که سطح فکری خود را تا به حد آن دوره سعدی تنزل دهند و میفرمودند. میان اصر حاضر که در آن خدای الکتریک بر همه جا فرمان فرمایی می و به وسیله رادیاسیون الکتریک از دور میلیون ها گاو ماده را بدون اینکه قبلا و بعدن و یا در همان حال با گاوهای نر جمع بشوند آبستن کرد به طوری که حتی نر و ماده بودن گوساله‌ها در اختیار ما باشد با دوره سعدی تفاوت از زمین تا آسمان است این عین عبارت آقای نواپور و سند فرمایشاتشان نیز تلگراف خارجه مورخه اول آوریل بود که در جراید ایران منتشر شده است. مختصر اینکه ایشان میفرمودند که سیسال سال وقت برای مطالعه و سیسال سال برای مسافرت و سیسال سال برای سخن سرایی لازم نیست. مثلا وقتی که خودشان را با سعدی مقایسه میفرمودند، میگفتند که معلومات من در همین پایه به درجات از معلومات سعدی بیشتر است. چه او انگلیسی نمی دانست و از کتب تمدن عتیق و تطبعات جدید در فلسفه سغرات و طبق بندی امپراتورهای اسلام و نسایه پیکته حکیم و برتری نجاد انگلو و کتب جدید در تعلیم و تربیت و گپ و گپ زنان و کتاب مستطاب وقوق صحاب اطلاعی نداشت و حساب و هندسه نمی دانست و اسم الکتریسیته به گوشش نخورده بود و از اختراع داروین خبر نداشت و ادیسون را نمی شناخت. این عبد ضعیف راغم ستور اسم دیسون را در پای منبر شیخ محلمان که از اجلی فوزلا و علمای ایران هستند شنیده بودم و می دانستم که او چقدر به عالم بشریت خدمت کرده است ولی اسم داروین را نشنیده بودم از این جهت از آقای نواپور پرسیدم این چه کسی است؟ ایشان فرمودند که داروین همون مخترع بزرگی است که ماشینی اختراع کرده و با آن میتواند میمونها را با الکتریک انسان کند. و همچنین راجب سی سال مسافرت سعدی میفرمودند که در آن عصر قطارهای سریع‌السیر رو اتومبیل و طیاره و, و غیره وجود نداشته است. آن روز شیخ مشرفه بن الدنیا و دین عبدالله مجبور بوده است با قطار شطور مسافرت کند و 30 سال مسافرت بیست سال آن را در راه بوده است اما در مقابل باید بیشتر عمر را صرف سخن سرایی و نویسندگی کرد از همین جهت آقای نواپور در نظر داشتند که چند سباهی مسافرتی به بلاد فرنگستان کرده و پس از مراجعت وقت خود را به نویسندگی بکسروند همیشه اصرار داشتند چیزهایی در روزنامه ها نوشته شود که اخلاق اجتماعی را اصلاح کند البته این موضوع به نوبه خود نکته مهمی بود ولی وای بر حال آن نویسنده‌ای که بخواهد این فن شریف را وسیله ترقی و پیشرفت خود بداند آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند معتقد بودند که خوشبختانه صفات رزیله از ایران رخت بربسته است چه بسا افراد دیروزی که مثلا با ترجمه هولمز و آرسن لوپن امروز جزو طبقات ممتاز و عالیه شدند آقای نواپور نسبت به این دسته از نویسندگان بسیار بدبین بودند و همیشه در ملأ عام به آنها فحش می‌دادند و بدگویی می‌کردند. تکرار می‌کنم، ایشان اعتقاد داشتند که نویسندگان حقیقی باید هدف اساسیشان اصلاح اخلاق اجتماعی باشد و هیچ وظیفه‌ای در دنیا مقدستر از این امر شریف نیست. اگر ایرانیان بخواهند کتبی از نویسندگان خارجی ترجمه کنند باید حتماً کتب نویسندگانی مانند ویکتور هوگو، والتر اسکات و گستاب لوبون را ترجمه کنند. چه با ترجمه این کتب اشخاص فقط نفع اجتماعی را در نظر گرفته و نفع شخصی ابداً در آن موجود نیست. خودشان چنین می‌فرمودند. من در نظر دارم کتاب تمدنهای اولیه تعلیف علامی تحریر گستاب لبون را به تبدیل کسفت الفاظ از فرانسوی به فارسی نقل کنم. اگر چقدر و مصبر و بزرگ است؟ اما مطالبان نیز به نوبه خود بسیار تازه و جالب توجه است. مثلا این قواس دریای تحریق در قسمت تاریخ ایران ثابت کرده است که از آثار ادبی قبل از اسلام فقط دو کتاب برای ما مانده است. یکی زندوستا و دیگر... شاهنامه آیا این مطالب برای ما تازه نیست درباره والترسكات می‌فرمودند، اینکه بعضی میگویند والترسکات فقط برای عدای دینش این همه رومان با مقدمههایی به این مفصلی نوشته به کلی باطل است او ابدا نفع شخصی در نظر نداشته است منظور اساسی او نفع اجتماعی بوده است یکی دیگر از نویسندگانی که آقای نواپور با آثار او زیاد علاقهمند بودند، نویسنده شهیر انگلیسی دیکنز بود. آقای نواپور که از جوانان متجدد و فکر بودند، راجب این مرد بزرگ مطالعات عمیقی کرده و حتی از جزئیات زندگی او اطلاع داشتند. مثلا خوب می‌دانستند که این مرد چگونه لباس می‌پوشید است. اصلا نقای نواپور به لباس اشخاص زیاد معتقد بودند و می‌فرمودند که لباس تأثیر مهمی در روحیه و سایکلاجی دارد هر ملتی خصایصی دارد که یکی از مهمترین آنها طرز لباس پوشیدن آن است بقیده ایشان متمدنترین ملل و امم انگلیس و بعد آمریکایی‌ها بودند لباس در زندگانی این دو ملت تأثیر عظیمی دارد در نظام انگلیس قریب دویست نوع یونیفرم موجود است. انگلیس‌ها باید حتما با اسموکینگ سر نهار بروند و الا توهینی به اخلاق اجتماعی می‌شود. اصلا مردمان طبقات مختلف لباس‌های مختلف دارند. هر حزبی در اروپا لباس مخصوصی برای خود انتخاب کرده است. لباس یک نفر انقلابی با لباس یک نفر کار متفاوت است. حزب فاشیسم ایتالیا که پیشبایان در دوران شباب به حرفه کشیشی اشتغال داشته به پیشوای خود تحصیل کرده لباس او را برای خود انتخاب کرده است و پیشبای حزب ناسیونال سوسیالیسم که در جوانی رنگ رز بوده است، طرفداران خود را نیز به رنگ خود درآورده است شما تصور بکنید که وقتی با پالتو مرتب دم در اتاق یکی از وحصهای ادارات تشریف میبرید، پیشخدمت چطور به شما احترام میگذارد؟ در صورتی که اگر پالتوه شما کثیف و یا بد شکل باشد و یا مثلا کاملا به تنتان نچسبیده باشد و یا اینکه یک خیاط ناشی سر آن کار کرده باشد 90 درصد شانس دارید که پیشخدمت اصلا کارت شما را به رئیس اداره نرساند یا اینکه اگر کمی یقه پالتوه شما طویل تر باشد با آن را بالا بزنید هیچ تصورش را را میکنید چه حالت مرموزی این پالتو به شما می اکنون با این همه بیانات و با این مطالبی که درباره عقیده آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر هستند راجب پالتو گفته شد خاننده عزیز حد میزند که پالتوی آقای نواپور تا چه اندازه دقیق و مطابق سلیقه و اصول امروزی و مدرنیسم درست شده بود رفیقی دارم بسیار ظریف و مزاح و اتفاقا آن شب وقتی که آقای نواپور این مطالب را برای ما شهر می دادن در محسر ما بود این رفیق شوخ من آقای نواپور را به خوبی نمی شناخت و هنوز به فضایل و کمالات سوری و معنوی ایشان پی نبرده بود. نمیدانست که ایشان تا چه اندازه منور الفکر و متجدد بودند. موقعی که آقای نواپور نظریه خود را راجب لباس و تاثیر عظیم آن در روحیه بیان میفرمودند، رفیق من از راه تمسخر گفت چو خوب است که آقای نواپور این مطالب را بنویسند تا قلایه غزان استفاده کنند؟ من واقعا خیلی سرخ شدم چون که دیدم اگر آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند متوجه این لحن تمسخر آمیز شوند دوستی اینجانب با این جوان منور الفکر را متجدد به کلی به هم خواهد خورد ولی خوشبختانه آقای نواپور کلام ایشان را جدی دانسته پرمودند موقع چیز نویسی این بنده هنوز نرسیده است